فصل بیستم بامداد روز اول هفته وقتی هوا هنوز تاریک بود مریم مجدلی بر سر قبر آمد و دید که سنگ از جلوی قبر برداشته شده است. او دوان دوان پیش شمعون پتروس و آن شاگردی که ایسا او را دوست می داشت رفت و به آنها گفت خداوند را از قبر بردن و نمیدانیم او را کجا گذاشتند. پس پتروس و آن شاگرد دیگر به راه افتادند و به طرف قبر رفتن. هر دو با هم میدویدند ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلوتر افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت، ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمال که روی سر او بود در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشهی گذاشته شده بود. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت، آن را دید و ایمان آورد. زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند اما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه میکرد همانطور که او عشق میری خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن ایسا را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند آنها به او گفتند ای زن چرا گریه کنی؟ او پاسخ داد خداوند مرا بردند و نمیدانم او را کجا گذاشتند وقتی این را گفت به عقب برگشت و ایسا را دید که در آنجا ایستاده است ولی او را نشناخت عیسی به او گفت ای زن چرا گریه کنی؟ به دنبال چه کسی میگردی مریم به گمان اینکه او باغوان است، به او گفت ای آقا اگر تو او را برده ای به من بگو او را کجا گذاشته ای تا من او را ببرم. ایسا گفت ای مریم. مریم برگشت و به زبان ابری گفت ربونی یعنی ای استاد. عیسی به او گفت به من دست نزن. زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفتم. اما پیش برادران من برو و به آنان بگو. که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا میروند. مریم مجدلی پیش شاگردان رفت و به آنها گفت: من خداوند را دیدم و سپس پیغام او را به آنان رسانید. در غروب روز یک شنبه وقتی شاگردان از ترس یهودیان در پشت درهای بسته به دور هم جمع شده بودند. عیسی آمده در میان آنان ایستاد و گفت سلام بر شما باد و بعد دستها و پهلوی خود را به آنان نشان داد وقتی شاگردان خداوند را دیدند بسیار شاد شدند عیسی باز هم گفت سلام بر شما باد همانطور که پدر مرا فرستاد من نیز شما را میفرستم بعد از گفتن این سخن ایسا برانان دمید و گفت روح القدس را بیابید. گناهان کسانی را که ببخشید بخشیده می شود و آنانی را که نبخشید بخشیده نخواهد شد. یکی از دوازده شاگرد یعنی تومات به معنی دوقلو است موقعی که عیسی آمد با آنها نبود. پس وقتی که سایر شاگردان به او گفتند ما خداوند را دیده ایم، او گفت من تا جای میخا را در دستش نبینم و تا انگشت خود را در جای میخا و دستم را در پهلویش نگذارم، باور نخواهم کرد. بعد از هشت روز، وقتی شاگردان بار دیگر با هم بودن و توما هم با بانان بود، با وجود این که درها بسته بود عیسی به درون آمد و در میان آنان ایستاد و گفت سلام بر شما باد و بعد به توما گفت انگشت خود را به اینجا بیاور دستهای های مرا ببین دست خود را به پهلوی من بگذار و دیگر بی ایمان نباش بلکه ایمان داشته باش توما گفت ای خداوند من و ای خدای من عیسی گفت آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی خوشا به حال کسانی که مرا ندیدند و ایمان می‌آورند عیسی معجزات بسیار دیگری در حضور شاگردان خود انجام داد که در این کتاب نوشته نشد ولی اینقدر نوشته شد تا شما ایمان بیاورید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به وسیله نام او صاحب حیات جاویدان شوید.